بسم الله الرحمن الرحیم در بحث کتاب میراث السراجی هستیم اون دسته از افرادی که از طریق سهمیه مشخص شده ارث می بردن یا همون زوی فروز بیان شدن رسیدیم به عصبات باب العصبات عصبات جمع معنیس عصبه است. عصبه خودش جمع هست مفردی ازش شنیده نشده عصبه برای مصنع و جمع به کار میره برای مذکر و مهنس هم به کار میرود عصبه در لغت همون خویشان پدری رو میگویند فیشاوندال پدری شخص رو میگن در زبان عرب به امامه هم میگن اصائب چون سر و دورش رو میگیرد احاطه میکند به این خاطر به نزدیکان پدری عصبه گفتند که گویا پدر رو احاطه کردهاند. پدر یک طرف باشد و پسر یک طرف امو از یک جانب و برادر از جانب دیگر دیگه احاطه میشه و نسبیه تو عصبه خب هست نسب و سبب فیلن نسبی رو توضیح میده العصبات و نسبیه عصابات نسبی از طریق نسب عصب عصبه هستن ثلاثتون سه گروه هستند. عصبتون به نفسی عصبه به نفس خودش عصبه هست مرند پسر پسر رید عصبتون به غیری عصبه به غیر شخص دیگه اومده عصبهش کرده مرند دختر رید و عصبتون غيره، عصبه با عصبه بغیر و عصبه مآغیر اینا هر تا رو کسی دیگه اومده عصبه کرده ولی عصبه بغیر رو مذکری اومده عصبه کرده و عصبه مآغیر رو معنسی اومده عصبه کرده است اما العصبتون به نفسه اما اونی که به نفسی عصبه هست خودش کسی دیگه او را عصبه نگردانیده فکلو ذکرین لا تدخل فی نسمته الى المیت اونسا تعریف عصبه به نفس هر مذکری که داخل نشود در نسبت او به میت زنی یعنی بین او و میت زنی تدخلی نداشته باشد مرد پسر پسر امیت و هم اربعه و این اسباب نفس چهار صنف می باشد اینایی که مستقیم بدون زنی به میت میرسند چه قسم هستند جزء المیت جزء میت که همون فرزندان و فرزندان فرزندان باشند البته مذکر چون این بحث عصبه به نفس هست پس پسران و پسران میت پسران میت و پسران پسران اله هرچه برود به پایین و اصله اصل میت که همون پدر و جد باشند و جز او ابیه جز پدر میت که همون اموها باشند که همون برادران میت باشند جز پدر میت که همون برادران میت باشند و جز او و جز جد میت پسران جد چه کاره میت میشند اموهایش پس این عصبه به یا فرزندان پسران میت و پسران پسر آخر یا پدر, پدر پدر پدر یا برادران و یا هم اموها این عصب به نفسست. الاقرب فالاقرب اینا اولویت بندی دارند در عرص بردن که همشون هر زمان عرص الاقرب فالاقرب نزدیکتر سپس نزدیکتر یونجحونه به قرب درجه ترجیح داده میشوند به نزدیکی درجه هرچقدر نزدیک تر باشند اولاتر هستند اعنی اولهم هم بالمیراثی خودش این نزدیک ها رو ذکر میکنه که کدومیکی یکی از اینها از بقیه نزدیک تر است. اعنی منظورم اولا هم بالمیراثی اولاترین ترین که ذکر شد به میراث چی که هست جز علمیت جز البول ثم که است پسران سپس پسران پسران و هرچه پایین تر برد. پس اگر میت شخصی فوت کرد. یک پسر داشت و برادر هر دو تا هستن هستند برادر ارث نمیبرد فقط پسرش ارث میبرد. اگر پسر نداشت، اون الموقع برادر ارث می برد حالا اولاترین ها رو میگه اول جزء میت است پسران سپس پسران پسران ثم اصله سپس اصل میت ای ال پدر ثم الجد سپس پدر جد ای اب جد توجيب ده پدر پدر پدر مادر دیگه اون اصبه حساب نمیشه اگر تعریف اصبه رو مرونی بکنیم و اینه علا و هرچه بالاتر بره پدر پدر پدر پدر پدر پدر پدر پدر آخر البته اولویت دارد اگه پدر باشه دیگه بعدی نمیبره بعدی نمیبره پس جز امیت اصل امیت ثم جز او ابیه سپس جزء پدر میت جز پدر میت چی کارهای میشن؟ ای ال اخوه برادران ثم بنوهم سپس پسران برادران و این اگر هرچه پایین تر باشن و چهارولین گروه از اصبه بنفس ثم جز او جدیهی سپس جز پدر بزرگ که همون ای الاعمام اموها هستند سمه بنو سپس پسران اموها و هرچه پایین تر برین این بود پس از اصناف اصناف به ها. ولی یه نقطه رو در نظر بگیریم که ثم یرجحون به قوت القرابه سپس کارجی داده می به قدرت نزدیکی ممکن است یکی از دو طرف به میت وصل شوند یعنی از طرف پدر قدر هم مادر یکی فقط از یک طرف خب اونی که از دو جهت به میت میرسه قوتش بالاتر هست الان دیگه داره توضیح میده چون میرجحون به قوت القرار سپس کارجی داده می به قدرت نزدیکی اعنی به منظور از قدرت نزدیکی آن ذل قرابتین اولاً من ذی قرابة وحده. اونی که از دو جهت نزدیک هست، اولاتر تر هست از اونی که ذی قرابة وحده، فقط از یک جهت نزدیک است. ذکر ان کاره آورته که مرد باشه چیزت اگر اونی که از دو سمت به میت وصل میشه از دو جهت اولاتر هست به ارث بردن از اونی که از یک جهت به بیت میرسه خودش در جلوتر توضیح میده فرقی نمیکنه چه زنگ چه زرد باشه چه مرد لقوله علیه السلام بجدید القوله رسول الله صلی الله علیه و سلم ان اعیاده بل الاوم یتوارثون دون بن العلات همان اعیان اولایی که از جهت پدر و هم از جهت مادر وصل هستن ارس میبرن بغیر از, از بن العلات اولایی فقط از طرف پدر وصل هستن پس اونایی که هم از سمت پدر و هم از سمت مادر به میتو اصل هستند ارز میبرند در مقابل اونایی که فقط از طرف پدر ارز فقط به رسند. بدل بدلاللات هستند فرزندان پدر خالی هستند خودش مثال میذینه به خاطر ما مثال میبیدیم که الاخل اب و ام مانند برادر پدری و مادری شخصی فوت کرده یه برادر پدری مادری داره یه برادر فقط پدری داره خب برادر پدری مادری ارث میبره اینجا ولی برادر پدری دیگه ارث نمیبره اول عخت واام افارت عصبتتا مللبتی اولامل اخی لاب. گفته بود فرقی نمیکنه چه ذکر باشه چه انسا؟ باله مذکر رو مثال زد مانند برادر پدری مادری برادر پدری مادری ارس می‌بره اما برادر پدری ارس نمی‌بره حالا عرزه رو مثال می‌زنه اول اخت یا خواهر ل و خواهر پدری مادری شخص فوت کرده یک خواهر پدری مادری داره که این خواهر پدری مادری عصبه معغیر گشته که در بحث خودش عصب مفصلتر توضیح داده میشه این خواهر پدری مادری با دختر میت عصبه میگرده زمانی که عصبه گردید همین خواهر خواهر میت که از طرف پدر و مادر خواهرش هست اولاتر هست از برادر میت که فقط از طرف پدر برادرش هست پس او اخت لئب و اوم خاهر پدر و مادری اذا صارت عصبتا من البنتی زمانی که عصبه گشت عصبه من البنت از طرف دختر که بهش بگن عصبه ما اغیر اولا من الاخ اب اولاتر هست از برادر پدری خاهر یت که هم از جهت پدر و هم از جهت مادر خاهرش هست زمانی که عصبه گشت اولاتر هست از برادر میت که فقط از طرف پدر برادرش هست ماندی که شخصی فوت کند یک دختر داشته باشد یک خواهر پدری و مادری داشته باشد و یک برادر پدری اینجا برادر پدری ارث نمیبرد، دختر سهمش رو می برد و خواهر پدر و مادری عصب معغیر هست باقی مانده مال رو می برد دیگه برادر پدری از ارث ساقط می شود. و ابن الاخ ل و اولا ام اول ابن امر الاخ اب برادر پسر برادر شخص فوت کرده یک برادر زاده داره برادرش هم فوت کرده چون اگه برادر داشته باشه دیگه پسر برادر اون موقع دیگه نیست و ابن الاخ ل اب و ام برادر زاده ای که اون برادرش هم از طرف پدر هم از طرف مادر برادرش است برادر شقیقش است اله اون برادر شقیق پسر داره خب این پسر اثره هست این پسر پسر اون برادری هست که هم از طرف مادر هم از طرف پدر برادرش پس پسر برادری که هم از طرف پدر هم از طرف مادر برادر هست اولا اولاتر هست من ابن از پسری که من ابن الاخی اولاتر هست از پسر برادری اون برادری که فقط از طرف پدر برادرش مهیت فوت کرده دو تا برادر زاده داره یه برادر زاده داره که برادرش هم از طرف پدر هم از طرف مادر برادرشه یک برادر زاده دیگه داره که فقط از طرف پدر برادرشه اون برادر این پسری که مال اون برادرشه که هم از طرف پدر و هم از طرف مادر برادرشه ارز میبره ولی اون پسری که فقط از طرف پدر برادرشه اون ارث نم ببره این نختر میخواد بگه این همهشون مثال هستن. مثال اون چیزی که گفت، اونی که از دو جهت نزدیک هست، اولاتر هست، اونی که از اونی که از یک جهت فقط ممیت نزدیک هست. و کدالک الحق، في اعمام المیت همچنین هست حکم در اموهای میت. ما یک یک اموی دارد که برادر پدرش. ولی برادرش شقیقه پدرشه یعنی هم مادرشون یکی هم پدرش برادر پدرشه پدرش با اون امویش هم مادرشون یکی هم پدرشون این امو اولاتر هست از اون امویی که با شخص امو میشه ولی فقط جد بشون یکی مادراشون با, با هم فرق دارد پس و کذلی که فی اعمال اعمام المیت همچنین هست حک در اموهای میت ثم في اعمام ابیه در اموهای پدرش اموهای پدرش منظور اونایی که برادران جدش هستن ثم في اعمام جدهی در سفست در اموهای جدش این ها بودن اصبه به که مفصل بحثشون رو توضیح داد شاید این سوال پیش بیاید که چرا بحثی از خواهر و از اطراف دیگر نشد بخاطر که اینجا بحث ما بحث عصبه هست اونایی که فقط از طریق مذکر به میت وصل بودند و در وسط زنی اون نبود موافق و پیروز باشید